قسطهای هزار یک شب شب سی و ششم. خلیفه گفت من به سلطان محمد بن سلیمان زینی خط نویسم چون آن خط بخاند تو را آسیبی نرساند. علی نوردین گفت چگونه می شود که سیادی به ملوک خطید نویسد؟ هرگز این نخواهد شد. خلیفه گفت راست گفتی ولی من سبب را با تو بازگویم. که من و او در یک دبستان پیش یک آموزگار بودیم او را بخت یاری کرده سلطان بسره شد و خدا مرا سیاد کرد اما او بسیار وفادار و حقشناس است من هیچ تمنا از او نکردم مگر اینکه او حاجت من برآورده. علی خاقان چون این بشنید گفت بنویس. خلیفه قلم و دوات گرفته پس از نوشتن بسم الله بنوشت که این کتاب از هارون الرشید بن مهدی است به سوی سلطان محمد بن سلیمان زینی که پرورده نعمت من است و او را به ای از مملکت خود نایب کرده ام باید در همان ساعت که این کتاب زیارت کند و این خط بنیوشد خیشتن از نیابت معزول دانسته علی بن خاقان را بر جای خود بنشاند و فرمان را مخالفت نکند. و سلام. پس نوشته را به علی بن خاقان داد. علی بن خاقان کتاب گرفته در حال از ایوان به زیر برآمده به بسر روان شد. آنگاه شیخ ابراهیم با خلیفه گفت ای پست این پست ترین سیادان دو ماهی از برای ما بیاوردی که به نیم درم ارزش نداشتند سه دینار از ما بگرفتی اکنون میخواهی کنیز را نیز از دست ما بگیری خلیفه چون سخن باغبان بشنید بانگ وی زد و به مسرور سیاف اشارت کرد که خود را آشکار کند و به شیخ حمله آورد و اما جعفر وزیر در همان ساعت که خلیفه جامعه به سیاد داده بود کسی را به دارالخلافه فرستاده بود که جامعه از برای خلیفه بیاورد و از غذا جامعه حاضر آورده بودند در حال خلیفه جبه و دستار کریم سیاد برکند و بهدان شخص که جامع آورده بود بداد و خود جامعهای های خلافت دربر کرد و پیش ابراهیم بیستاد شیخ ابراهیم چون خلیفه را دید بشناخت و مبهوت شد و از شرمساری انگشتان همی خواهید و با خود می گفت که من به خوابندم یا بیدار خلیفه گفت، ایوه شیخ، این چه حالت هست؟ شیخ را مستی از سر برفت و خیشتن از کرسی به زیر انداخته زمین ببوسید و این دو بیت بخاند. این دو چیزم بر گناه انگیختند، بخت نافرجام و عقل ناتمام. گر اقوبت می کنی مستوجبم ور ببخشی اف بهتر که انتقام پس خلیفه از او درگذشت و کنیز را فرمود که باید به دارالخلافه روی. چون کنیز به دارالخلافه رسید، خلیفه از برای او منزلی جداگانه داد و خادمان و کنیزان از برای او بگماشت و با او گفت: بدان که خواجه تو را به سلطنت بصره فرستادم. ان شاء الله تعالی خلعت از برای او خواهم فرستاد، تو را نیز با خلعت روانه سازم. کنیز در منزل خود بنشست. علی بن خاقان همی رفت تا به بسره رسید و به قصر سلطان برفت و فریادی بلند برکشید که سلطان فریاد وی بشنید و او را بخواست. چون در پیش سلطان حاضر شد کتاب خلیفه به دو داد. چون خط خلیفه بدید بر پای خواست و سه مرتبه کتاب ببوسید و گفت به جان و دل فرمان خلیفه پذیرفتم پس چهار قاضی و وزیر و امیران را بخواست که خیشتن معذول کرده ولایت به نورالدین بسپارد در حال ابن ساوی وزیر حاضر شد سلطان کتاب خلیفه به دو داد چون کتاب بخاند بدرید و بردهان نهاده بخوایید سلطان محمد در خشم شد و گفت این چه کار است کردی؟ معین بن ساوی گفت علی بن خاقان خلیفه را ندیده و با وزیر او نیز ملاقات نکرده بلکه ورقه ای به دستش افتاده که از خلیفه توقیعی در آن ورقه بوده از مکاری هرچه خواسته نوشته است چرا تو فریب تصویر او خورده خیشتن را معذول می کنی؟ نه از خلیفه توقی رسیده و نه خلیفه کس فرستاده اگر او را سخن راست بودی حاجبی با خیشتن بیاوردی تو اکنون او را به من بسپار که من او را به زندان کرده حاجبی به شهر بغداد بفرستم و چگونگی معلوم کنم سلطان محمد را تدبیر او پسند افتاد و به خادمان گفت علی بن خاقان را بر زمین افکندند و چندان بزدند که بیهوش شد پس از آن به حکم سلطان بند بر پایش نهادند و به زندانبانی که قطیت نام داشت فرمان رفت که نورالدین را در زندان کرده شب و روز بیازارد و زندانبان علی بن خاقان را به زندان برد و مستبه را رفته آب زده فرش بگسترد و متکا نهاد علی بن خاقان را به نشاند و بند از او برداشت و نکویی به او همی کرد و اما سلطان همه روزه زندانبان حاضر آورده به آزردن علی نورالدین تاکید میکرد و زندانبان چنان مینمود که آزارش همی کنم، ولی مهربانی میکرد تا اینکه چهل روز بر این بگذشت روز چهل ویکم هدایا از جانب خلیفه آوردند سلطان محمد را شگفت آمد و با نزدیکانش مشورت کرد که این هدایا چیست و از بهر کیست همگی گفتند هدایا از بهر سلطان جدید است مگر ما این بنساوی که گفت میبایست روز نخست او را بکشی. سلطان گفت کشتن او را خوب به خاطرم آوردی. اکنون به زندان رو و او را بیاور تا بکشم. بنساوی گفت همی خواهم که منادی در شهر ندادهد که هرکس قصد تماشای کشته شدن علی بن خاقان دارد پای قصر حاضر آید تا اینکه مردم شهر جمع آیند و دشمن مرا به دین حالت ببیند سلطان گفت هرچه خواهی بکن پس وزیر از نزد سلطان برآمد و با شهنه گفت که منادی بفرستد و به ندا دهد چون منادی ندا درداد مردم محزون و گریان شدند و کودکان نیز در دبستانها از شنیدن آن ندا بگریستند و گروهی از مردم به پای قصر شتافتند و گروهی با وزیر به سوی زندان رفتند که نورالدین را بیاورند. چون وزیر با خادمان به زندان رسید بانگ بر قطیط زندانبان زد که آن ناپاک زاده را بیاورید. قطیت گفت ایوه وزیر. بس که او را آزرده ام نظار گشته و از هلاکش چیزی نمانده پس قطیت به زندان اندر شد و جامعهای های نوردین را برکند و جامعه بر وی بپوشانید و به نزد وزیرش آورد نوردین دشمن خود را دید که به انتظارشی ایستاده و به کشتن او آماده است گریان شد و گفت از مکافات دهر ایمنی ابن ساوی گفت ای پسر فضل مرا با این سخن میترسانی امروز تو را بکشم و دماغ مردم بسره بر خاک مالم و سخن تو را ننیوشم و گوش به سخن شاعر همی کنم که گفته است دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر هفتاد و هشتاد سال پس بنساوی گفت علی بن خاقان را بر استری بنشاندند و بر کوچه و بازار ندا همی دادند که این است پاداش آنکه بر خلیفه دروغ بندد و در فرمان خلیفه تزویر کند چون به شهرندر بسی گردانیدند آنگاه به پای قصر بیاوردند و به جلادش سپردند جلاد با نوردین گفت معمورم و معذور اگر حاجتی داری با من بگو که از زندگی تو ساعتی بیش نمانده و چون سلطان در منظره ایوان نشیند تو کشته خواهی شد علی بن خاقان به چپ و راست نگاه کرده گریان شد. مردم نیز بر احوال او بگریستند. جلاد برخاسته، قدهی آب به او داد. بنساوی چون این بدید از جا برخاسته، قده بشکست و آب بریخت و بر جلاد خشمگین شد و به کشتن نوردین فرمان داد. مردم بسره این گونه رفتارهای بنساوی را بر برخیشتن هموار نکرده او را دشنام دادند و نفرین همی کردند که گردی برخواست چون سلطان گرد را بدید گفت که از سبب گرد مرا خبر دهید وزیر گفت به فرمان نخست علی را بکشند سلطان گفت تا سبب گرد ندانم نخواهمش کشت هزار را آن گرد از جعفر برمکی وزیر و سواران او بوده است و سبب آمدنش اینکه خلیفه سی روز پس از فرستادن علی بن خاقان حکایت او را فراموش کرد تا آنکه شبی به قصری که انیس الجلیس آنجا بود برفت آواز انیس الجلیس را شنید که قمین و هزین همی گریست پس خلیفه در بگشود انیسل جلیس را نظر بر خلیفه افتاده برخواست سه مرتبه زمین ببوسید. خلیفه گفت کیستی؟ بحر چه گریانی؟ انیسل جلیس گفت من هدیه علی بن خاقانم و همی خواهم که به وعده خیشتن وفا کنی و مرا با خلعت به سوی او فرستی. خلیفه را دل بروی به سوخت. جعفر برمکی را خواسته گفت اکنون سی روز است که از علی بن خاقان خبری نرسیده. گمان دارم که سلطان او را کشته باشد. ولکن ای جعفر به تربت پاک پدرانم سوگند که اگر با او بد کرده باشند به پاداش کردار بد ایشان را حلاک سازم و همین ساعت تو باید به بسر سفر کنی. و از کار سلطان محمد سلیمان با علی بن خاقان آگاه گشته مرا خبر دهی. جعفر برمکی فرمان پذیرفت و روان گردید. چون جعفر به بسر رسید و حجوم مردم را بدید از سبب جمع آمدن مردم باز پرسید. سبب را بیان کردند که علی بن خاقان را همین خواهند بکشند و مردم به تماشای او گرد آمدهاند. چون جعفر این را بشنید، تند براند و زودتر به نزد سلطان رسید و با هم سلام کردند. جعفر وزیر فرمان خلیفه با سلطان محمد باز گفت و سلطان را با وزیرش موین بن ساوی بگرفت و علی بن خاقان را بر جای وی، به سلطنت بنشاند و سه روز در بسره بماندند بامداد روز چهارم علی بن خاقان با جعفر برمکی گفت زیارت خلیفه را بسی آرزومندم پس جعفر با سلطان محمد و مئین بن ساوی و علی بن خاقان به بقداد روان گشتند چون به بقداد رسیدند به بارگاه خلیفه حاضر آمدند و خلیفه را از ماجرای علی نوردین آگاه ساختند. خلیفه به خشم اندر شده با نوردین گفت شمشیر بگیر و ابن ساوی را بکش. علی بن خاقان شمشیر گرفته پیش رفت. ابن ساوی نیازمندانه نظری کرد و گفت اگر من به مقتضای فطرت خیش بد کردم تا به مقتضای سجیت نیک خود پاداش بد مده علی بن خاقان شمشیر بیانداخت خلیفه گفت ای دین او تو را فریب میدهد. پس خلیفه با مسرور گفت چیغ بردار و ناپاک را بکش مسرور وی را بکشت خلیفه با علی نورالدین گفت آنچه آرزوداری از من بخوا علی بن خاقان گفت خدا خلیفه را معید بدارد مرا به مملکت بسره حاجتی نیست من حضور خلیفه را بیش از همه چیز آرزومندم آنگاه خلیفه انیس الجلیس را حاضر کرده به نوردین بازل نمود و قصری از قصرهای آلی بنیان به دیشان داد و زیا و اقار و سایر مرتبات بهر او ترتیب داد و او را از ندیمان خود گرفت و نوردین با عزت و رفاهیت همیزیست تا مرگش در رسید شهرزاد قصه به انجام رسانیده گفت ای ملک این خوشتر از حدیث فرزندان ایوب بازرگان نیست و آن این بوده که و فرزندان در عهد گذشته بازرگانی بود توانگر و پسری داشت چون آفتاب درخشنده که قانم بن ایوبش گفتندی و این پسر را خواهری بود که از بسیاری حسن و نیکویی می‌نامیدند چون پدر ایشان بمرد بسی مال به میراث بگذاشت چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروبه است